زندگی چیست؟ روادار تارس؟ اینک میپردازیم به موضوع بحث امشب از ندارم درباره روان تحلیلی معنوی سخن بگویم بلکه موضوع دیگری را تحت عنوان زندگی چیست برمیگیرم. مچر خدا را از راه مذاهب جستجو جور او همیشه از آسمان میخواهد آنچه را در ف خود نهفته دارد به او بنماید ترتاز پایان که نوع ذریفتری از خودخواهی است موجب این درخواست می شود وسیعی از سازمان های و ادیان در پاسخ به همین ترس زاییده شدند این کلام را نشان بگذاشت هر مذهبی مدعی بشارت آینده یا دست کم سعادت آینده پیروان خود است و شیطان سهم است که در تاریک جهت قرار دارند آنان نوری را که مؤمن حقیقی نیایش میکند کند می اما همان گونه که ماهیان ستارگان را از زیر آب مذاهب و تمدنهای بیشماری آمده و رفته ما هیچ یک در مقابل دنیا و طبیعت بشر تا به مقاومت نیاورد فقط کافی است آدمی دریابد یابد که امید به درون داشته باشد نه به دیرون. آنگاه در خواهد یافت که کسی جز خودش نمیتواند. موجب تحقق رستگاری وی شود او اینجاست درون او نفس حیات میدمد و به او معرفتی میدهد که خدای درون اوست بر این ارصه میتواند بسازد برپا ایستد و مجبور نباشد خود را در مقابل خدایی ناشناخته بر خاک اندازد خدایی به صورت خویش حقیر خود خلق کرده است ما با مغزی بزرگتر تا به عرضش های منفی بیاندیشد و بازوی درازتر تا آن را به تحقق درآورد. تا روزی که وطفت ها از کنار آدمی گدر کنند به خدا وفادار خواهد ماند. چنانچه وطفت از نیروی کافی برخوردار شود برشر تسلیم آن می شود به جزی یک جوینده حقیقی و نیرومند خدا بشر هم مانند تناب نقطه تحملی دارد. و افسانیت برای مرد همانقدر کننده است که طلا و قدرت برای زن این باری است که بر نقطه ضعف او نهاده شده است مرد را میتوان به بهای زیبایی زن خرید مشروط بر اینکه زن به قدر کافی زیبا باشد زیبایی زن با زر قابل خریدن است مشروط بر اینکه مقدار زر کافی باشد دنیا بازار بزرگی است که در آن هر کالایی در معرض فروش است و هر کسی که بهای بیشتری از قماش آرزوهای بشری به پردازد صاحب کالا می شود چه کسی قادر است سنگینی و میزان عشق را تعیین کند در قبار گشتگی های ما تنها یک نور ثابت نهفته است و آن عشق نام دارد فقط یک امید برای های تنهایی آدمی وجود دارد و آن عشق است باقی همه پوچی است عشق از روح الهی زاده شده و عموماً در جسم به سر می برد. بشر آسایش خود را از آن استخراج می کند. زیبایی همچون ستارگان است در صورت های می آیند اما همه زیبایند و هیچ فست نمی آن ستاره از کجا برخاست و در کدام افق عفول خواهد کرد آری عشق حقیقت دارد عشقی که عالم هستی را زیبا می کند و نفس الوهیت را در خاکی که بر آن گام می, می دمد با عشق روح با شکوه صدای خدا که با نقمات موسیقیش قادر است روح را بر بال عقاب بلند پرواز اوج بخشد به ابدیت وارد می شود آیا بشر یافت می شود که هجاب از روح برکشیده و نظر به روی خدا اندازد او بسی زیباست: خدا بر هر کسی که این پرده را بدرد آرامش، صلح، اخلاف دانش و کلام نیکو ارزانی می دارد و اما خدا می‌گوید: اگر چه همه آنانی که مرا را جویند آرزوی من را در سر دارند زین که من تا به عبد مبارکم هیچ گناهی از زنی که هجاب مرا برگیرد و عشق مرزد زاده نمی شود و نه از مردن هر روزه فقط باید که حجاب مرا دارید ای حقیقت آدمی با آنچه در دستانش لمس می کند، تماس حاصل نمی کند چنان چه به دستش تهید تا در تاریکی شب روشنگره راهش باشد آن را بیدرنگ به سوی خواهد هدف که این ستاره نیست شادی همیشه یک قدم جلوتر از او می‌رخصد همان گونه که آتش در موظا و او باید که آتش را به چنگ آورد و باید فرنده ستاره شود زیبایی برایش معنایی ندارد چون بیش از آن است که بتواند برگیرد و از آن خود سازد سرواست فقه بیشتر است چون بار سکه های دیگران بسیگرانتر است پس زندگی چیست؟ یک پر بزر یک علف که بر بادی به اینجا و آنجا پر میکرشد. گاهی به حاصل می نشیند و تکثیر می شود. گاهی در هین عمل می میرد و گاهی هم به سوی آسمان اوج میگیرد. چون چنانچه بزری خوب و سنگین باشد شاید اندکی از راه سفر به سوی خدا به سوی منشأ اخیش را بپیماید نیکوست که بکوشیم و به سفر بازگشت به سوی خدا مبادرت پرسیم بشر باید بمیرد نهایتا ممکن است اندکی زودتر از موعد انتظار بمیرد باز هم میپرسم زندگی چیست؟ به من بگویی بشر کیست که حکمت زمین را میشناسد؟ کیست که راز جهانهای ستارگان را می و عوالم فراسوی و گرداگرد ستارگانی که بیصدا كلام کلام خدا چشمک می‌زنند، ای بشر راه زندگی را به من بگو به کجا می رود؟ از کجا آمده است؟ آه اما تو پاسخ را نمی گوش کن به تو خواهم گفت تو از میان تاریکی آمدی و سر به سوی تاریکی داری همانند طوفانی که برقا شده باشد در دل شب پرواز می کنی و به طبقات نامرئی یا در واقع به هیچ کجا می روی. برای لحظه ای در نور آتش برق می و از این حال که باز هم به جهانهای دیگر رفته ای. در اینجا زندگی چیزی نیست زندگی کل است دستیست که مرگ را از راه به دور میدارد. دارد کرم شبتابی که در تاریکی شب می و در نور روز سیاه است سایه ای که در علفها می و خود را در غروب گم می اینک آگاه شدی که زندگی خط زیر بنای همه عالم است حتی در ماده که عملا برای حیات خداوندی در بخشهای اعظم اول و دوم از طبقات کیهانی ضرورت است. لذا در, در مقابل ماده مقام متعال همچون اقیانوسی عظیم است که تمامی فضا را آکنده پیش از آفرینش روح‌ها به صورت توده‌های متجلی نشده در درگاه خدا قوتور بودند. آنان به منظور خدمت به خدا نیاز به اختلاط زندگی با ماده داشتند. پس خدا آفرینش را به منظور خود بهسازی ذرات وجود خیش آغاز کرد. مدعیان جستجوی حقیقت بسیار هستند اما تنها انگشت شماری هستند که نیازمایند و به قدر کافی استقامت به خرج می‌دهند تا آن را به خود ثابت کنند. از آن هم اندکتر شمار کتا نیست که حاضرند از تمیم قلب هر چراکی دارند برای به آوردنش فدا کنند منظور از حقیقت اوساره، روح و حیات هر آن چیزی است که در عالم هستی دارد یا به نظر می هستی داشته باشد خود حقیقت تغییر نپذیر است منشه و آغاز حیات و آغویانوتی اشق و حکمت نرقلاف های پنهان است و فقط در یک مکان یعنی بالاترین نواهی خداوندی است که به قدرت الهام روح قابل مشاهده به صورت خالص می باشد لازم است این نکته به روشنی درک شود که برخلاف اینکه میگویند می گویند صوت نتیجه حرکت ارتاشی است در حقیقت علت نخستین است همه پدیده های عالم از حرکت ارتعاشی ساخته شدهاند که رکمی حیاتی در امر آفرینش نواحی مادی است در اوواب تحتانی جریانات صوتی گوناگونی از حرکاتی ارتعاشی سرچشمه میگیرند و وظیفه حمل امور آفرینش را در جوانب بیشمار آن به عهده دارند اما صوت اصلی یا جریان روح خداوندی موجد تمامی جنبشها نیروها و عناصر نور و صوت است عواملی که زیر مجموعه صوت اصلی بوده و در دومین و سومین بخش اعظم کیهان قدم به هیته هستی میگذارند